پرمودن که کسی که در دادگاه اگه میخواد شهادتی بده باید مطلب رو دیده باشه یقین داشته باشه تا بتونه شهادت بده ما به چه قدرتی رسیده ایم که میتونیم بگیم اشهدو الله، اله، اله، اله، اله، اشهدو انه رسالت پیغمبر، اشهدو انه علیهن ولی الله جواب روایت از امیر المؤمنین علیه السلام و السلام است که پرمودن اقرار به شهادتین میشه اسلام، ایمان نیست چون اقراری چی ولی اگر بخواید اقرار ایمانی بشه باید عمل برکان بشه. پس این چه درجه از شهادته؟ این که هر کسی میگه اشهدو الله، اله، اله، الله و اشهدو ان محمد الرسول الله صلی الله علیه و سلم و اشهدو انم علی، ولی، الله یعنی من زبانن قبول کردم. لذا مسلمونه ولی هنوز مؤمن نیست. مگه آیه شریفه نمیگه اومدن خدمت پیغمبر یه عده از اعراب شهادت اینو گفتن گفتن آمن نه نا آیه نازل شد شما کنیز ایمان نیاوردید. شما بگید اسلم نه این شهادت اسلامیه نه شهادت ایمانی. میخواید به شهادت ایمانی برسید اونم درجات مختلفی داره. یا یا لزین آمنو آمنو. پایین اینکه ایمان آوردید باز ایمان. سلمان هم شهادت میده ابوذر هم شهادت. اینن روایت محسومه. ایمان،, ایمان سلمان ده تاست ایمان ابوذر نه تا یعنی حتی بین سلمان و یه پله فاصله است. انشالله دعا کنیم که این شهادت ها به اون شهادت های ایمانی بیانجامه